فصل بم بخش اول بالاخره زن آشناس را یافتم با او آشنا شدم سالهای زیادی از روز مرگ استاد میگذرد نقاشان جوانی از فرنگ برگشته و از مدرسه ها بیرون آمدن عدی طرح آگهی تجارتی میکشن صحنه تئات را می, می کتب را مصور میکنن صورت اشخاص را میکشن و کاریکاتور برای روزنامه ها می سزن. بعضی از شاگردان سابق استاد و بسیاری از فرنگ برگشته ها خودشان کوسه استادی میزنند نمایشگاه نقاشی ترتیب میدهن در دانشگاه یک کندرکده باز شده و تدریجاً میتوان گفت که استاد کم کم دارد فراموش فراموش می‌شود. و حالاست که من می‌توانم یادداشت‌های خود را درباره این نقاش هنرمند و انسان بزرگواری که جانش را فدای هنر و حیثیت خود و مردم کشورش کرد، منتشر کنم. در سال‌های نخستین پس از شهریور، نوشتن شرح زندگی استاد برای بسیاری ناندانی شده بود هر که هرچه به قلمش میآمد مینوشت. حوادث عجیبی از زندگانی او نقل میکردن یکی از مقال نویسان حتی گستاخی را به حدی رسان که در نهایت بیشرمی ادعا کرد که مدت سه سال با استاد در تبعید مکاتبه داشته و استاد تمام اصرار زندگیاش را برای او نقل کرده است ولی آنچه منتشر شد جز ابتزال چیزی نبود اما آن قصه های بیسر و ته دیگر فراموش شده و جا دارد که وقایه مهم زندگی او یا اغلب حوادثی که بر سر او آمده و کوششی که در راه هوشیاری مردم داشته و مراحل فداکاری و گذشته او به گوش معاصرین برسد من ادعا کنم که چیزی دقیق و سریع از نبرد او با قوای اهریمنی استبداد می‌دانم اما میکوشم اغلب روحیه او را مکنونات قلبی او را که بزرگی و دلیری و پاکی و در عین حال معایب او را آشکار می‌سازد به نمایانم اغلب این را می‌توانم بگویم که استاد نقاش بزرگی بود فقط برای اینکه به کار خود ایمان داشت و مطمئن بود که به وسیله هنر نقاشی دارد با ظلم و آزادی کاشی مبارزه می‌کند. او فقط یک هنرمند نبود. او هنرمند بزرگی بود برای آنکه انسان بود و از مهنت دیگران در غم. نقاشی برای او وسیله‌ای بود در مبارزه با هنر هنرپروری او جنبه اجتماعی و مردم دوستی داشت. استاد می‌خواست به مردم خدمت کند و از این راه نقاشی می‌کرد و فقط به همین دلیل هنرش به دل می‌نشست. من هنوز در کنج مدرسه استاد نشستم و هرچه اسم او از زبان ها بیشتر میافتد احترام من به او بیشتر می شود. برای من این مدرسه معبدی است و از وقتی آقا رجب مرده من خود را متولی ولی این حرم میدانم. الان که دارم یاددداها را تنظیم می کنم صورتی از استاد که یکی از شاگردانش پس از مرگ او ساخته در برابرم است. صورت کشیده ای داشت. پیشانیش بلند بود. گونه ها برجسته، بینی شکسته، چشمها درشت و نافظ، ابروها کمانی، چانه پهن و تحباریک عینک شاخی سیاهی میزد و هر وقت خیره به چیزی مینگری گویی میخواست با منقارش رگ و پی رو از میان گوشت و پوست و استخوان بیرون بکشد از نگاه او لطیف تارهای روح انسانی به ارتعاش در میآمد نگاه میکرد و میدید آنچه از نظر همه رد می شد، او بیرون میآورد از آثارش پیداست آنچه در طبیعت مردم ایران پنهان است او اوریا می نمود. تصویری را که نقاش از او ساخته با عکسی که از سالهای زندگی او در دست است مقایسه می‌کنم تمام حالت در لبخندی است که در دور لبان او پرپر میزند خنده ی عارضی نیست خنده ی ذاتی است این لبخند همیشه دور لب چشمهای چشمای لانه کرده است نقاش هم سعی کرده که این لبخند را ثبت کند بدون اینکه در خطوط صورت علایم خنده دیده شود اما چقدر فرق است با خنده‌ی طبیعی که در عکس برجسته شده این لبخند از شادی نیست، این لبخند نمی که از زندگی برخوردار می شد. این لبخند از فرط تأثیر است، مثل اینکه استاد می خواست بگوید چه شیرین است، چه شیرین می تواند باشد، افسوس که ما تلخی آن را می چشیم. با وجود این نقاش جوان استاد را مطابق سلیقه خود جلوه گر ساخته، او چیز دیگری دیده، او انسان رازدار و آرامی را خواسته است بنمایاند او فقط آنچه از استاد همه میدانسته دانسته حکایت کرده است. اما چقدر تفاوت است بین این استاد و استادی که زن ناشناس به من معرفی کرده. شاگرد و استاد در تصویری که الان در برابر من است چیزی اضافه بر آنچه من درباره او گفتم ندارد حکایت کند. مرد بلند همتی بود. خون دل می‌خورد، آرام بود و تو دار. با کسی دوست نمی‌شد، از همه کنارگیری گیری از رجاله ها. از پشت هم ها از آنهایی که نان را به نرخ روز می خوردند. از آنهایی که جز شکم و تن خودشان هدف دیگری در زندگی نداشتند بیزار بود نمیتوانست قیافه آنها را تحمل کند ناگهان از محفل آنها و بدون اینکه حتی عذر بیاورد میرفت در این حال با همه دوست آشنا بود وقتی صفا و پاکتلی احساس میکرد از صمیم قلب شیفته میشد در مهنت آنها شریک بود خودش را می توانست تا حد آنها پای آورد و یاره مهربان آنها باشد. به آنها کمک میکرد و غم آنها را میخورد. هر کس را که به خنش میآد می, می پذیرفت. ساعتها وقت گران های خود را با مردم عادی صرف می کرد. به طوری که همه خود را از دوستان صمیمی او میدانستند به موقع مغرور و متکبر بود. اگر هزار بار کسی از او دیدن میکرد تا از کسی خوشش نمیامد تا برای کسی احترام قائل نبود به دیدنش نمیرفت. بدون اینکه فخر و مباهات کند، اراه را بر همه تحمیل می کرد زیر بار زور نمیرفت تا از تی دل چیزی را نمی یافت دل نمی باخت و دل نمی کند خوش لباس بود و پابند به نظم و ترتیب کارگاه او جمع پریشان بود. اینطور او را همه می شناختند و همینطور هم نقاش او را ساخته اما زن ناشناس از میزان و مقاومت او از خودداری او داستان دارد این جنبه زندگی او را این زن باید حکایت کند. من این زن را با صفت ناشناس خواهم خواند چون خودش ما است که هیچ کس او را تا به حال نشناخته. بگذاریم این خودخواهی را داشته باشد. آشنایی من با او جور غریبی بود. غریب به نظر او آمد اما من دقیقاً حساب کرده بودم. چندین سال روز هفت دی دستور دادم که موزه را تعطیل کنم. خودم در دفتر مدرسه می نشستم و مراقب بودم که کی این روز تاریخی به دیدن موزه میآید. من در این مدرسه فقط نازم هستم. مدرسه استاد از آن ادارات دولتی است که سرقفلی دارد. همه ماه مقدار هنگفتی پول ظاهرا صرف تعلیم شاگردان این آموزشگاه شود. قریب چند میلیون تومان در 13 سال اخیر یعنی از زمان تبعید استاد به کلا این مدرسه خرج شده و تا به حال 13 هنرمند هم از آن فارق و تحصیل نشدند. اما عقلن 1300 نفر لیسانسیهی هنرهای زیبای فارغ تحصیل این مدرسه در ادارات دولتی از اداره معادن گرفته تا بانک کشاورزی و پیش و هنر مشغول ردخ و فتق امور هستند. مدیریت این مدرسه مداخل فراوان دارد. هر وزیری که عوض می شود، مدیر مخصوصی سر این مدرسه می گذارد. بنابراین هر سال اقلن این مدرسه دو مدیر به خود می بیند. ولی ده سال است که من نازم هستم. ولی هیست که اختیارات من به است که می توانم روز هفتم دید، هر سال به بحانهی، یک بار به عصر اینکه تالار موزه باید پاکیزه شود. یک بار به اسم این که سخت دارد چکه می کند بار دیگر به بهانه اینکه خودم ناخوش هستم موزه را تعطیل می کنم. سه چهار سال گذشته و کسی نیامد. زن ناشناس نیامد تا روز هفته هفتادیم امسال. اکنون 15 سال از روز مرگ استاد میگذرد روز هفتم دی تالار موزه را دادم قفر کنم. خودم در دفتر نشستم. از پنجره اتاقم می توانستم مراجعه این را ببینم. ساعت چهار نیم بعد از ظهر بود. شاگردان داشتن از حیات خارج می شددن. بیشترشون رفته بودن. اتومبیل شیکی دم در آهنی مدرسه نگه داشت. زنی که خود ماشین را می برد از آن پیاده شد. زنی با قد متوسط موقر و خوشندام وارد حیات شد و به طرف سرسرا رفت. چند قدمی که نزدیک شد نگاهی پر از تعجب سرسرا انداخت معهازا راهش رو را ادامه داد از یکی از شاگردها که از پله ها پایین میامد چیزی پرسید من فورم پنجره اتاقم را باز کردم و پرسیدم خانم چه فرمایشی داشتید؟ دلم طب طب می کرد. به زور خودم را نگه داشتم. حس می کردم واقعی که سالها به راهش بودم دارد اتفاق میافتد. گویی به خودم مجده می دادم. یافتمش. صاحب چشمها را پیدا کردم. اما هنوز خود چشمها را ندیده بودم. خانم خوشندم از شنیدان صدای من یکی خورد. سرش را بالا کرد نگاهی به چشمایی که ابدا و گیرا نبود به من انداخت. خندش مانند آفتاب بهاری که برفهای سر کوه را آب می کند، دل آدم را شاد می کرد. اما همین خنده وقتی تکرار میشد آدم حس میکرد ساختگی است. با لحنی شیرین و معدب و مهربان گفت: ببخشید آقا آمده بودم موزهی مدرسه را تماشا کنم. میخواستم از همان پنجره جواب سربالایی بدهم و روانش کنم چون صدا خیلی عادی و معمولی بود من آن زن را را جور دیگری تصور می کردم. اما آهنگ معدب و مهربانش مرا از رو برد به علاوه دودلی آدم را در زندگی به کارهای عجیبی وامی دارد بفرمایید توی دفتر تا خدمتتون عرض کنم از سرسرای مدرسه وارد امارت شد آه کاش آقا رجب زنده بود این را که نمی توانست از من پنهان کند بیرو در واسی در حضور خانم ازش می پرسیدم. آیا این همان زنی نیست که مدل می نشست؟ اما این زن با این صورت زیبا و با این وقار و سنگینی اگر مدل هم نشسته باشد باید دلیلی داشته باشد فراش خانم را به اتاق من آورد همین که وارد شد مانند کسی که سالهاست مرا میشناسد و یا مردمی که همهی خلق را دوست و خویشاوند خود میدانند گرم و خودمانی گفت آقا فراشتان هم عوض شده است اینجا دیگر من خودم را باختم رنگ از صورتم پرید فوری یقین کردم که این زن دروغی میخوندد هر جمله که می گفت پشت سرش یک خندهی بلند شنیده می شد. در عین حال این خنده نمکین و دلگیز بود پرسیدم کی فراش من عوض شده است غلام الان سه سال و چند ماه است که در این مدرسه کار می کند. با همان آهنگ شیرین و معدب، با همان خنده تصننایی گفت عجب پس شاید اشتباه می کنم. این زن مهارتی در تقلید و تصن داشت. از همان دقیقه اول احساس کردم که با یک زن عادی سرا کار ندارم ناگهان ولو برای چند لحظه هم شده یقین حاصل کردم که خودش است لحظه چشم به چشمایش خیره شدم هیچ شباهتی بین این چشم‌ها و چشمای تصویر روی پرده نبود اما پیشانی او و لب و دهن و زولف های سیاه و صاف و بینی کشیده قلمی شباهت داشتند منتهی معلوم بود که گذشته روزگار این لب و دهان را هم پیر کرده است دندان دندان‌های سفید یک دست داشت و همین دندان ها و لبهای باریک خنده‌ی او را دل فریب می کرد. این زن به خوبی میدانست که با خندش چه تاثیری در دیگران دارد پالتو گشادی که آن روزها مد بود بر تن داشت پالتو سیاه بود یخه و برگردان سرخ رنگ ابریشمی صورت زن را روشنتر و با تراوتتر جلوه میداد آستر سرخ پالتو برق میزد و نرمی و صافی آن از دور هم ادراک می‌شد. های پالتو باز بود کیف مشکی را به بازویش آویخته و دستش را به کمربند قرمز رنگ برراقی که روی پیراهن سیاهش بسته بود، قلاب کرده بود. پاهایش کشیده، متناسب، ورزیده و پسندیده مینمود یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم. ولی این زن می رود و من بیچاره باز هم باید خونه دل بخورم. آنچه استاد کشیده هیچ، من هم باید بسوزم و چشم راه باشم. گفتم، تشریف ورده بودید که موزه مدرسه را تماشا کنید. بله، خیلی میل داشتم که آن را ببینم. بدبختانه امروز موزه تعطیل است. از برف و باران چند روز اخیر سخفا و اتاق چکه می کند. و برای این که به تابلوها سدمی نرسد یک هفته موزه را تعطیل کردم. تا پس از تعمیر شیروانی مجدداً برای تماشای عموم باز شود. پس موزه تحت نظر شماست. و اگر بخواهید می توانید به من اجازه بفرمایید که آن را تماشا کنم. البته ممکن است اما خوب خانم میدانید که کار اداری است و اشکال دارد. با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم. و هرچه بیشتر پافشاری میکردم او نرمتر میشد. من اگر یقین داشتم که این بانوی زیبا و آراسته همان زن ناشناس صاحب چشم‌هاست، حتما تسلیم نمیشدم و او را وادار می کردم که از من بیشتر خواهش و تقاضا کند تا او را مطیع کنم و به زانو درآورم. یقین داشتم که زن استاد را میشناخته است در عین حال دو دل بودم می بایستی شخصیت و اراده خود را به او نشان دهم اما ای بکار این بود که تزلزل خاطر راه مرا صد می کرد و من مجبور بودم دست به اثار راه بروم چند بار آرزو کردم که آقا رجب زنده باشد و حداقل یک بار به یک سوال من جواب صریح بدهد به من گفت اشکال اداری را همیشه می شود رفع کرد به علاوه من مسافر هستم و اگر امروز تابلوها را نبینم دیگر فرصت نخواهم کرد. این تهدید نبود. این زن فقط به قصد دیدن آثار نقاشی استاد ماکان روز پانزدهمین همین سال مرگ استاد به تهران آمده بود. اما من تهدید تلقی کردم و محکم تر جواب دادم. ممکن است از خانم استعدا کنم که روز دیگر تشیف بیاورم؟ نه آقا چون این تغاظایی نکنید نمی شود. زن ناشناس یکی خورد. صورت خندان. قمانگیز و جدی جلوگر شد اما این وظل چند ثانیه بیشتر طول نکشید سرش را تکان داد باز هم خنده سیمایش و تابناک و دندانهای سفید و یک دستش را نمایان ساخت گفتم چرا مگر امروز روز خاصی است؟ نه امروز روز خاصی نیست اما دلم میخواست میتوانستم آثار استاد را ببینم دیگر داشت معیوس میشد داشت جا خالی میکرد از فرصت استفاده کردم و پرسیدم ممکن است از خانم استدعا کنم که خودشان را معرفی کنند. من نازم این مدرسه هستم. ای آقا به من چه کار دارید؟ من هر که باشم از شما تقاضا می کنم اجازه بفرمایید امروز اینجا را تماشا کنم. برای اینکه دیگر فرصت ندارم. از شما خیلی ممنون هستم. شاید خانم خودشان هنرمند هستند. شاید خودتان نقاش هستید. آن وقت البته استثناء جایز است. ممکن است برای روزنامه یا مجله مقاله ای میخواهید بنویسید؟ البته اجازه به شما دادن هر که هم که باشید خالی از اشکال نیست اما دلیل هم همیشه میتوان پیدا کرد مثلا ممکن است به عذر این که وضع رقت تالار موزه را به شما نشان بدهم بگویم در را باز کنن مقصودم از معرفی خودتان این بود و الا می فرمایید بنده چه بکنم من به این موزه علاقمند هستم اگر بدانم که توصیه شما به اولیای امور باعث خواهد شد که در ساختمان بنای جدید این مدرسه تسریع شود حاضرم از الان تا فردا صبح در تالار را فقط محض خاطر شما باز بگذارم از این گذشته بالاخره هر کس که به قصد تماشای موزه می آید، باید قبلا جواز از دفتر مدرسه بگیرد به نظرم دلش به حال من سوخت با نظر رقت انگیزی به من نگریست مثل اینکه از شیرین زبانی من متاثر شد شاید این لحنه اداری من رقت او را برانگیخت ناگهان حادثه‌ای عجیبی اتفاق افتاد. با وجود تمام انتظاری که داشتم با وجودی که سالها منتظر چنین آمدی بودم، باز هم عجیب بود. به من گفت: اسم من فرنگیس است. اگر از شما خواهش کنم که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه را تماشا کنم و بروم، باز هم استدعای مرا رد می‌کنید؟ من نه هنرمند هستم و نه نقاش، نه روزنامه نویس اما خیلی دلم می‌خواهد امروز این تابلوها را تماشا کنم. اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود. لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد نبود. نه. من دیگر یقین داشتم که این زن خودش است. از میان پنج زنی که روز هفته دی پنج سال پیش به دیدن موزه آمدند و رفتند، یکی به نام فرنگیز بود و این زن نام خانوادگی خود را نگفته بود. من تمام آمار تماشاگران را در نظر داشتم. در طی این پنج سال مکرر دختران و زنانی با نام فرنگیس آمدند اما همه ای آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی می نوشتند من با همه ای آنها صحبت کرده بودم با چه دلحوری حرفهای آنها را می شنیدم اما آنچه وچه امتیاز آن زن ناشناس باید باشد یعنی نگاه نافذ چشما در این زنان و دختران نبود فقط یک فرنگیس بی اسم خانوادگی پنج سال پیش در چنین روزی آمده بود و امروز روز هفت دی یعنی روز 15 سال مرگ استاد باز آمده است. آن هم با چنین نگاهی دیگر شکی باقی نمیماند که این زن خودش است. خود همان فتانه یا ای است که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده است. از همین جهت حقش بود که بیشتر پافشاری کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید و به زانو درآید و تسلیم من شود.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 نمی توانم حالت این چشم ها رو بیان کنم. احساس کردم وزنی سنگینی دارد دل مرا از محفظش می کند. ترسیدم پریشان شدم. آن حالتی به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را میتوانم بگویم. حالت چشم ها شبیه به حالت چشم های صورت روی پرده بود. میل کردم به هر قیمتی شده خودم به این چشم های روی پرده را رو ببینم. تسلیم شدم. من تسلیم شدم. منی که خیال میکردم خشک و مومیایی شدهام شدم، منی که جز کار اداری و استاد چیز دیگری در سر ندارم، من در مقابل این زن ناشناس زانو زدم. نگاه چشم ها مرا نیز افزون کرد. چند ثانیه ای از فرت قصب به خود میپیچیدم. بعد چیزی در دل من آب شد، اقده گشوده شد، زخمی سر باز کرد و خون از آن ریخت. سستی گوارایی به من دست داد، دیگر شناختمش، پهلوی خودم گفتم چه کشیده است از دست این زن این خیالات الان که دارم یاداشای روزانه گذشته را رو تنظیم میکنم به خاطرم میآید در آن لحظه اختیاری دیگر نداشتم و او این زن فتن انگیز فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود از پشت میز آمدم به طرف در آن را باز کردم و رو به دالان گفتم غلام بیا در را باز کن زن ناشناس روی صندلی کنار میز من نشست به او نگاهی نکردم. وقتی غلام وارد اتاق شد پشت میز تحریر رفتم کلید را درآوردم و به او دادم گفتم تالار سرد ها؟ امروز که آتش نکردی نخیر خودتون فرمودید بخاری نفتی را آتش کن بگذار در تالار تا ما بیاییم فرنگیس فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد کیفش را باز کرد آینه ای از آن درآورد. نگاهی به صورتش انداخت با دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد آینه را در داخل کیفه رنگی که در دستاش پنهان ساخت و به من نگاه کرد. آن وقت دیگر نطخش باز شد. از ساختمان موزه صحبت کرد از اینکه دوستان و هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد. رئیس شرکت فرش به او ارادت دارد. مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پاکره اوست خود معاون نخست وزیر همه توصیه های او را می خواند. اینها هیچ کدام ازشان کاری ساخته نیست. اینها باباهایی هستند که میخواهند چند سباه در این ملک زندگی کنند. شریک دوستند و رفیق قافله. کسی به کسی نیست. اما او که یک زن تنها و بیکس است، قدر موزه را می داند و اطلاع هم دارد که چگونه باید از این موزه نقاشی مراقبت کرد. همه های اروپا را نه یک بار بلکه مکرر دیده. او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش در یک ساختمان نگهداری کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدی نیست. اما به اندازه یک از هنر سر رشته ندارد این زن یک ریز حرف میزد و قسطش بیان مطلبی که مورد توجه و علاقش باشد نبود. از آسمان و ریسما میگفت. وارد جزئیات میشد. از زن وزیر فرهنگ گفتگو کرد. از دخترش چیزها میدانست. من به حرفهای او گوش نمیدادم. از همون وهله اول کینه‌ای در دل گرفتم. او را دشمن خود تشخیص دادم. او را قاتل و استاد شناختم. نه نمیخواستم به هیچ قیمتی کینه خود را بروز بدهم. میخواستم انتقام خودم را از این زن سنگ دل بگیرم. به من نگاه میکرد. آیا میخواست در دل و روح من رخ نکند؟ از زیر چشم و توجه تمام حرکات او بودم. همین که دیدم به من می خود را مشغول کاری کردم. وقتی بی اعتنایی مرا درک کرد، پلک‌های چشمش لرزید. بالایی سر من تصویری از استاد بود. فرنگیزگاهی به آن نظر میافکن در عین حال حرفش را میزد به دیوار دست چپ در مقابل پنجره چند کاشی که استاد آن را داده بود به دیوار نصب بود معمولا کسانی که به دفتر مدرسه میآمدند همیشه مدتی به تصویر استاد چش میدوختند اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشی ها مدتی توجه آنها را جلب میکرد زن ناشناس زیاد به آنها نگاه نکرد گوی آنها را زیاد دیده بود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 انگشتان و بلند و کشیده ای داشت. پوست سفید انگشتان با تراوت و نرم مینمود. در صورتش هیچ علامتی از پیری دیده نمیشد. فقط وقتی آدم لبها و بینی را با آنچه در تصویر چشم ثبت شده مقایسه می کرد میدید که تفاوتی است ظلفهایش بلند بود از پشت گوش تا نزدیک خط لب یک خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن مینمود. موهای مشکی مشک داشت. مانند قاب سیاهی بود که پوست سفیدی را سفید تر جلوه میداد یک چین در پیشانیش هویدا بود از لب و دهان و پیشانی حالتی جلوگر نمی شد. اما چشم ها در وضع عادی قمنگیز و تاثیرآور بود چند لحظه در اتاق سکوت فرما شد من همش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرفادارم، دارم اما به حرف حسابی به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم نه به حرفی که او برای تسخیر من میزند پهلوی خود میاندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کرد. آیا باید با او مدارا به خرش داد، با استدعا و التماس به او نزدیک شد یا آنکه این زن پرمدد خودخواه را باید با قدرت شخصیت آتی ساخت. همین سکوت او پرمعنی بود. همکنون داشت با من بازی کرد. عقلاً پس از اینکه با نگاهش مرا افزون کرد، حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در اتاق را باز کند، حقش شیم بود که به نحوی تشکر خود را ابراز دارد. این زن به چشم خود خیلی می نازد. با چون این تلسمی استاد را افزون کرده بود. و حالا در مواجهه ای با من هم کامیابی نصیب او شد. منتها من مدتها بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که بیست سال دیگر هم نازم بیچارهای باشم و پشت این میز محقر بنشینم فقط به این امید که با این زن روبرو شوم بنابراین نمی نمیتوانست تأثیر ناگواری داشته باشد شاید هم فرنگیز فراشفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده بود از آخرین و برندهترین هربهای که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پا درآورد ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود می گرفت و با من بی میکرد. در هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف دارم. یک نکته برای من مسلم بود. جان من دیگر به لب رسیده بود. و اگر نمی سر این پرده نقاشی را کشف کنم از پادر می آمدم یا امروز یا هرگز. ناگه هم فکری به خاطرم برق زد. فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشهام را بسنجم. از پشت میز برخاستم به طرف در رفتم. دستگیر رو گرفتم و گفتم: اجازه میفرمایید من سری به کلاس ها بزنم؟ گاهی شاگردها در کلاس می مانم و این برخلاف مقررات است. آنها را از کلاس خارج می کنم و فوری برمیگردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. خیلی طول میکشد آقا؟ ممکن است اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه بروم؟ آنقدر هم حوصله نداشت، آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود. نه خانم، اولاً که من باید در خدمتتان باشم، به علاوه پنج دقیقه هم طول نمیکشد. گفتم و در را باز کردم از اتاق خارج شدم. با کمال عجله به تالار موزه رفتم، غلام در رو باز کرده در آستانه تالار منتظر من بود. به او گفتم، تا دیگر منتظر نباش برو به خانه، من خودم در را میبندم و کلید در امارت را به سرایدار د برو جانم، به محض اینکه که غلام از پله ها پایین رفت، وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با ولعی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشم رفتم. گویی برای نخستین بار با این پرده روبرو شده گویی سالها شرح آن را شنیده و کپیه های از آن ولی خود آن را هرگز به چشم ندیدم. گویی از نو، جوان شدم و تازه دارم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه میشوم. چشم ها دیگر برای من معنی داشت. چشم های اراده ای مرا هم سلب کرد. چند دقیقه ای به آنها خیره شدم. تمام فاجعه زندگی استاد در نظرم جان گرفت. پشت این زن پر حرف را باید به زمین مالید. مینا گریستم و نقشه خود را تر می کردم. چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار درنبار را باز کردم و پرده را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم. دستی روی چشم کشیدم. مثل اینکه با لمس آنها بیشتر درک می کنم. بیشتر لذت میبرم. برم. گرد لطیفی روی پرده حس می کردم. خاک آن را با دستمال گرفتم. تابره را بلند کردم و با هر دو دست روی سر گذاشتم و به هم بار بردم. تابره سنگین بود و من ناتوان. حس میکردم که دارم زیر بار خم می شوم. نفستنان دو مرتبه به تالار موزه برگشتم. چند ثانیه ای روی چهارپایه نشستم. عرقم را خوش کردم، باز به دفتر آمدم و گفتم: بفرمایید خانم. من حاضرم همراه شما بیایم. روی صندلی راحتی نشسته بود و تصویر استاد را تماشا می کرد به محض اینکه صدای مرا شنید، بلند شد. کیفش را رو که روی زانویش بود برداشت. بندان را به دستش آویزان کرد و گفت: متشکرم آقا. دم در ایستاد. در را نگاه داشتم و وقتی فرنگیس خارج شد در را بستم و قفل کردم فرنگیس منتظر نشد که راه را به او نشان دهم معلوم بود که خودش راه را بلد است از ها بالا رفت و من دنبال او بودم دم در تالار ایستاد من در را باز کردم و داخل شد در تالار را بستم و چراغ‌های تالار را روشن کردم به محض اینکه تالار روشن شد در صورتش خیره شدم جای پرده چشمهایش روی دیوار روبروی پنجره خالی بود. ناگهان در روشنایی چراغ متوجه شدم که چیزی کم است. اما فرنگیس متوجه نشد. شاید هم خیال میکنم نفهمید. یک نکته برای من مسلم شد. این زن باهوش و با استعداد است و به آسانی میتواند به جلد آن موجودی که میخواهد نمایش دهد درآید. اگر لازم شود با یک نگاه چشم، با یک حرکت لب، و با یک چین روی پیشانی میتواند خود را با عاطفه رقیق الغرب و آشفته و فکور جلوه دهد با یک لبخند بسیاری را از پا درآورده. شاید میخواست نشان دهد که متوجه چیزی نشده اما من فوری احساس کردم که تالار موزه بدون پرده چشمایش از آن استاد نیست رفتم وسط تالار کنار بخاری نفتی ایستادم و زن را تحت نظر گرفتم فرنگیس از سمت راست شروع کرد به تماشای پرده های نقاشی استاد من در وسط ایستاده بودم و به هر طرف که او میرفت میچرخیدم و او را میپاییدم مقابل بعضی از این تابله ها کمی مکس میکرد بعضیها را ندیده میگرفت و میرفت این زن یک تماشا کننده عادی نبود خود را هنرمند هم نمیخواست جلوه دهد از خود پرسیدم برای چه اینجا آمده این چه هوسی است من همیشه او را از پشت سر میدیدم به هر طرفی که او میچرخید من هم میچرخیدم دیگر نمیخواستم به چشم های این سن نگاه کنم. از نگاهش پرهیز میکردم. میخواستم از پوشش حرکات او را بدون اینکه تحت تاثیر افسون چشم ها و زیبایی صورت بشوم تحت نظر بگیرم. هنرمند و خبره به نظر نمی آمد. اما مانند آدم های کنجکاوم که هنگام تماشا بهتشان میزند و دهانشان باز میماند نمی نمود. از کنار بعضی تابلوها تند رد میشد. گاهی مکس می کرد. ناگهان چندین قدم تند برمی داشت. و پرده دیگری را زیر نظر میگرف گویی تمام پرده ها را میشناخت و در هر یک از آنها چیزی که دوست داشتنی بود یافت. از وقتی که وارد دفتر شد این زن نخستین بار بود که زبانش بند آمد هنر استاد بر او تسلط یافت یا قدرت خاطرات گذشته او را کوبید یا هر دو